بسم الله الرحمن الرحیم اسماء الافعال های فعلها اسم فعل اسم فعل کلمه‌ای است که اسم است ولی معنی فعل را داره معنی اسم را نداره و چرا بهش فعل نمیگن چون علامت فعل را قبول نمیکنه کنه هیات العمل اذا لم يصعده العمل دور شد آرزو زمانی که کار با او هم ساز نباشه بمانی که همراه با عمل نباشد خب هیهاته پس دور شد هیهاته اسم هست ولی ببرید چه؟ بعوده هست ببینی فعل امر هست فعل مازی راسی. افل لی من یه ازو افل اسم هست ببینی فعل مزاره یعنی دلتنگ می شوم افل کسی را که ناامید می شود صح اذا تکلم غیرک ساکت شو. زمانی که شخصی دیگر سخن میگوید جوستو صح فعل فیل هست ولی آیه علامت فیل را قبول میکنه نه پس اسم فیل هست خیهاته و فیل صح اسم فیل هستند چون اسم هستند ولی معنای فیل رو دارند و خاطرین فیل نیستند که علامت اسم رو قبول میکنند عليك نفس نفسه که فهذبه عليك لازمی لازمی بگیر بر خود نفست رو اون رو تاذیب کن پاکش کن دور کن قلب بگی قلم رو روید که اذا صرتا یا زمانی زمان کی می‌ری علی که دور کن روید که اله اسم ثین هستند ولی با اصلی گروه اول فرق داشتن هاتا و قفل و اسم فیل هایی هستند که در ابتدا داره این معنی وز شدند در زمان عرب. اما علیکه ده. علیکه معنی دیگه این داره. دونکه هم شدید. رویدکه هم شدید. پس به خاطر این این دو نوعه امسلور آورد. و یک نوع دیگه از امسلور هم بیاره کتابی از درس دفاعی الشرف سماعی نصح کتابی به معنی اکتب هست. دفاعی الشرف یعنی ادفع انشرف سماعی اننسه اسمع اننسه گوش بکش بشنو نصیحت را سه اومین گروه از امثله قیاسی هست یعنی ما بیتونیم درست کنیم بر وزن فعالی زرابی نسره نصاری وبين قواعد قوائد اسم الفعل اسم فعل كلمة تدل على معنى الفعل ولا تقبل علاماته كلا ليس دلالت بر معنى مكولد وعلامات فعل رو نمي بذيرد وهو من حيث زمنه ثلاثة اقصر از جهة الزمان مثل فعله برسق اسمها اسم فعل الماضي اسم فعل ماضي واسم فعل مضارع اسم فعل مضارع واسم فعل امر واسم فعل امر و من حیف و و قسمان و از جهت وضعش بر هست مرتجل مرتجل مرتجل اونی هست که از ابتدا برای این معنا وضع شده دیگه ای ندارد هیهاته و فیل صح و منقول و منقول اسم فعل مرتجل، و اسم فعل منقول و منقول یعنی ابتداش برای چیز ای باید شده ولی نقل شده به این معنا و یونقه دو عنی الجار والمجروب نقل شده از جار و مجروب مانده علیکا و ذر و ذ باید دودک و و از مصدر باید رو دک. این قاعده 23 کتاب بود قاعده 24 بیصاحو اسم وزن فعل ثلاثی متصرف کرده می شود اسم فعل امر بر وزن فعالی پس اسم فعل امر بر وزن فعالی درست میشه ساخته میشه از بكل فعل ثلاثي متصرف تا از حرفی لینا بكل فعل ثلاثی از حرفی که یک سلاسی باشه متصرف متصرف باشه مانند عسا و لسنه باشه تام باشه ناقص نباشه پس با این شروط حرفی که این شرطا رو داشت یعنی سلاسی بود متصرف بود و تام بود بر وزن فعالی ما میتونیم اسم فعل درست کنیم مثلا از نسر نصاری، از کتب کتابی، از ومعه و باعه، این از درس اسم فیل محفق و پیروز باشید.